کردن صاحب که خواهیه که که اجمال و زبور مجموع مقایی و غیران و اجمال جز امور نسبیه یعنی موجه از در یک محنای برای بعضی مجموع باشه و بعضی مقایی باشه و فرد میکنه نسبت به افراد مستلش نسبت, نسبت به مراد موقع کردن ممارد شب محمود سال و در دیگه نشوان شوارم کردن که خیل مواحص اجمال و زهور جزب مسائل نصبی نیستن جزب مسائل مطلق نه این که نصبه فرمو مثلا بگیرم این کلام نصبه به یکی که مجمنه نصبه به یکی کسی, کسی دیگری زهور داره یا بیان مبین اینطور نیست برای همه فرسونه ای گفت آبیان این آبی ها برای همه یا موجود یا عمری نسبی نسبی یکی ببنده یکی نفرد برای اینکه اصل لغت باشه به برای عباق لغت و رای لغت واحد کناف داره مدر واهدی اینطور نیست که نسبی باشی نسبی بعد در افراد خرم بکنم نسبی بعد دیگه خرم سفر اختلاف مثله و این که ممکن است ای باشه که این مثله و باشه و سعرض نشدن که این نکته بازم ممکن است برچه مثله محترمی باشه اما محبوم آیه محبه سهانی در این طریقه مقالتش دونه اشارهی دارن و لذا یک اعتراض هم میکنن که مبنای این مطلب سهان شفایی نصبی بودن به اجماع با مبنای خود ها در جخ ظهور نمیزاد منتشب نیست به این مقدار حالا اول این مطلب توضیح اجمالی ازکن بعد وارد خود مطله از اص شد که چون استاد سری برای این مسئله بیان نکردن ممکن است نقطه این مسئله این باشه که آیا این اجمال و ظهور مطلقه یا نسبی افراد فر ممکن نتش این باشه که برگرده به بشت کوچیت ظهور که در خلال بحثای سابه چند بار این موضوع رو توضیح دادیم و از کردیم عادتاً در کتاب اصول ما برنامه این اشمالاً این توضیح این محط در بحث کوچیت ظهورات در محطس زن چون محطم شیخ بعد از اینکه محطس دومو بزن رساله شون نوشتن بیدیم که نجول از ظهور خصوص خارجی و جیه به اصطلا زن نوازه از حاصل از ظهور شرم زماهر شرم این بس از رو بگرد از خواب ما مهبر شده لبکه کلمات خوده ما شاید اشاراتی بشه باشه اما داریم کلمات ما درشدینه حصول افرس و چیه؟ این مفه بهتر مفه شده و همین مفه بحث معروفی سکران در موضوع به اصطلاح همانه الانتیک یا بیان و ظهور بود دادن راجع به همین اسمت و از شد که به طور پلی دو مبنای اساسی در وجه توجه تو زهور بگن از هاروازه که شده یک مبنی اینه که وجه توجه تو زهور با قطعه کشف و یعنی ما راهی داریم برای کشف ما را از مفکرده این راه راه زن نیست واره حقیقی نیست تو قائل شدن به جیه به سازورا اه. به نفر به سلام خاص از قاعده عامه قادر ما جیه یعنی زن سازن رو جهنیست مگر بعد از زنون که یکیش هم زن به ما زن مراز متکلم این خارج و دار مدناه بر این است که انسان روی کلمات دیگران حساب میکنه کنه این که لنده به مراز اینها فیدار وقت می وقتی میگه کلمه کلمه, چیه؟, کلمه چیه از مجموع کلام هم هم اگر این که کلمه باشه استفاده میشه اون در مقابل این رک غلیه دیگری وجود داره که تأثیر این بحث مراد نداره. یه بحث کشف مراد نیست بحث تریفیت و اصطلاح راقی بی به مراد نسکنده مراد نیست بلکه حقیقت مراد عبارت از مسئله به اصطلاح یه نوع میساقه یعنی یک معنای که خود کلام فی داره ما به دوباره نیستیم که مثلا ببینیم مراد رو میکنه در نظر عرف چون ضرور از مثل قبارین فرصوی مثلا فیزیک یا شیمی یا قبارین طبیعی یه چیزی نیستی که ما در صدر کشف ما هستیم مثلا یعنی هر یادنوارون این واقعیتی رو در خارج از عبور از خود متفوع می کردن سعی این رو که اون رو ببره که هوداری در جای شما که جواب‌های داده مثلا فرض این واقعیت آب مثلا در 100 درجه حرارت از اونجوری شویا که این واقعیت اولی حافين حاس حاضر حاضر. أفضل الأحجام الصلاحات الحض عريض اللحية كل صامد المبوني. هي الصلاحات قبلنا في ذلك زمان يعرفون أما في زمان ما يعرفون. فلذارا جميع هو كان يستخرعون هذا ما نبغاه لله. هو هذا إن لا أن يكون تفاهم عليه. موجه بدنه ها موجود که خطوب لبی ربی تفاهمان او و اسطحه چی خواهیشی بدن لحظ برده که یکی مثل می فهمیده برای این آب ماه و دو سال وقتی این عرب درمانو بگیم ما برده که می فهمیده اینه چی هست که می خواهد بگیم آب اینم بگیم ماه که اونم بفهمید نیزو میکنه وقتی این آب سنتراشن تا پول نرس مودل <سؤال> اپ <سؤال> از هم آب پس این باید برسید به ایک نوع میساق اجتماعی حالا آقای مراز رو میخواد باشی یا نباشیم و نباشی؟ ما دیگه کار ندارد این ما دنبال یه میبسید این قرارداد ماست در جامعه ما آب یعنی این معنی چه آب یعنی این معنی زفرسوگ یعنی این معنی بیار معنیشین برو معنیشین بخور معنیشین هر کدوم هم تکیم در شدو داره هم سفر ما این طور نیست که ما به دنبال دارد دنگاه اون نیستی که حالا که این زن برمه حاسب میشی نه اون را ممکن است گفته بشه این مطمئن که اجمال و ظهور نیستیز یا مصدر محتنی به این مطلب. این یعنی دستر از در از در نه در کفایه این افتناه آمده مرگون سانیه اشاره ای داره. بگیم کسانی که به جنبال این هستن که ما در مامور زهورات به جنبال مراد هستیم بنابراین این منتجم هست با این که بگیم این اجمال به زهور مصلح نیست این مصلح را دیگه وقتی گفت آب بیان آب منداش با در بیان این نسبی نمیشه از کلم در کفایه ندار پس بگیم و این یعنی اینجور تصویر بگیم آیا می توانیم این رو بکنیم؟ خب احتمال داره اما انصافت ملازمه ندارم در این قردم کنیم ترازم ندارم بگیم ایش هسان ایش قادر و ایش هروجیت زهور منشه ایش عبارد از کشمعات اینا که ایش محادم زهور رو مطلب میدن کسان ایش قادر هستن منشه ظهور نه, نه میثال اغلاوی دارم شواهد اغلاوی اینها نزلی میگیرند چون مثلا افراد و حسوسی های جاییه اونو خبرداد و اون فرماها ها فرموند در اونجا به اخری میسا و غنباری برای سیتو بایدی شد برای این آخری افتلافش مشکلی یعنی اون نزلی بودن برای این مسئله مشکل احتمال دیگری هم هست که این مسئله رو موطنی بکنی برای اون مسئله دیگری در وقت خیلی هم شده اون مسئله میشه آیا حقیقت وعض چیه که بحثش گذشت البته که این در اینکه این مسئاله قتنیس حقیقت وعض جای بحث نیست اما حالا چه مقداق ابتنا اون بحث دیگه است ما همین چند پیش به مناسبتی متعرض رابطه بین لحظه و معنا شدیم ارز کردم در وز رابطه بین لفظ و معنا که لفظ با معنا داره این رو که ما برمیگردیم و اون و خارجی و واقعی و حقیقت وجودی انسان و نقش کلام و تکنم و تلفز کاریان تلفظ در انسان یک نقش مثلا چاندی رو بنابرای اصطلاح به این نقشید که طبیل ضرورت های زمانی پیدا شده اما اینکه یک واقعیتی رو از جوهر انسان در رت انسان و حد وجودی انسان یا فصل انسان داشه این نیست مثلا خداوند متعال یک خسرت ترکیبی در انسان قرار داده که میتواند با داهان خودش ایجاد اسوات بکنه و چون اسوات متعدد میتونه ایجاد بکنه هر صوتی رو یا ترکیبی از دو صوت، سه صت چهار صوت رو برای یک معنا قرار داده چون حیوانات همینطور که دیدیم مثل پرسونگاه بود را بسن حیوانات در وقتی که دهانش رو میبردن سخت دهان یا کام دهان یک خفلتی داره از طبیعی و به اصطلاح با قول جوشتی ریژیم خودش و اونی که سخت دهان و کام دهان به زمان میشسته ایجاد فرزان نمیبانه و لطا این نگوانات نمیشوند ایجاد رو بروش میکن. سر ایجاد ایجازه در انسان یه خفلتی در زبان انسان که وقتی زبان انسان وقتی میشه به مکام انسان و زبان فضای خالی وجود داره این گشتر رواتری فضای خالی تولید اطمارت میکنه صبح منچه اشتین و اینکه این ریوان دیگه مثل گام و رویستان به برای نمیشوند محسوسی از اوها ساجه میشه این مقدار تمروار صدایی و درشون ایجاد در میشه بایدن خوب البته این حسرت در غیر انسان در نصف پر توتی هم به اصلاح پیدا رو میشه اونم این حسرت داره ولی داره دا این ایجاد آیا واقعا حدود لغت در سر بشر و شب همینه همین مرزا که انسان توانایی ایجاد سوت و بلحاظ تکوینی داره از ترکیبی از این اصواد کلمات درست شد از ترکیبی از کلمات هم جمل و محاصر مختلف درست شد و این امر خیلی طبیلی یعنی هیچ نقطه خاصی درشید آیا واقعا اینه یا نه یک جهات دیگری هست که اساس محمد و اون در حقیقت مبین حد وجودی انسان و حقیقت وجودی انسان. انسان این حقیقت نصف و لفظ و بیان یا به تربیر قرآنی علم آن بیان یا به تربیر و علم آدم هم اصلا این یک واقعیت دیگری ای. این نیست این مقداری که ما مثلا بخواهی تصور ظاهری بود حالا برقا یه مقداریش اون یعنی این مساقه محتلی میشه به اون که واقعی که افتیارت واقعا بشه توی جا میدازه یه مقدارش برمیگه به یعنی اون که هات ظاهری قدیه که ارتباط بین دست و معنا چیه؟ ون چون صادره هم عرض کرده به عنوان فقط تکرار سریعا در از اونها به اصطلاح مطالبی که مطرح شده در رابطه لحظه آنها که منادون این رابطه ظاهری ها نه خیقتن رابطه یه دو از من عرض رابطه تامه میدونن از مافی کلمین دنیای دنیا. اسلام نصفت ازش یک عده موتدی میدونن قلط تامنه میدونن رعی دومان رعی سوم یک عده یک نوع رابطه غریبی میدونن که همین نظریه انمیزای شدی شده, شده بستر نظریه چارون یک عده یک نوع رابطه ادراکی زرینی میدونن که ما اصطلاحاً ازش تبدیل به صدایه خانه میتونیم این نظریه ای چارون نظریه پنجون یک عدد رابطه یک عمر اعتباری میدونن که باز خود اعتبار هم ترجات داره که سابقا جلدش دیگه و هر حال در تیه تمام این موانی یک رابطه بین بیده معنا تصور میشه یک عددی هم مثل از ما و اخیرا هم عددی رابطه رو قاهل میدونن فقط عادت هستن یک نوع انتظار یک نوع تعبود. من تحفظ دادم قلبم بگم آب یعنی این و تعهد دادم که اگر شما هم گفتید مراسو آب, آب مراد سرونه یک تحفظه بین انسان هست چه در تفریم و چه در تفهم با این لفظ این معنا رو اراده بکنه خب نوع تحفظش فرم کنه روشنه پس کنم یک یکی دیگر تحفظ شاید حضرت و استادتون رو مطلح میدونند شاید این مبناه خودشون در ورد به اصطلاح بنامه داشتند که این به اصطلاح و ایشون در واضه یکی از لوازم مکتب تلحان اینه که هر استعمالی ورده اینطور این سریع استعمال از ورد کنان باشه این بحثاش خودش ممکن است که ایشون در در مبانه باشه که اینجا موسیقی گرفتن و قاضی شدن که راضی بینه به اصطلاح یعنی اجمال کلام و کلام یک نوع اطلاح داره اینطور نیست که این کلام برای یک کسی محمن باشه برای یک کسی ظاهر باشه اگر گفت آبیان این برای همه محبن. یعنی واضحه یا برای همه محمن فهم نمید نیست که برای یکی, یکی باشه یکی نماشه خب این تا حالایی این قسمت از بعد که آیا واقعا به اصطلاح زیر بنا احتمالات اینکه این مبنا، این مطلب بر چی مقتنی باشه؟ دو مبنا دو احتمال ارض کردیم یکی اینکه تشمارات باشه یا مثلا باشه اون رو تأثیر بزنید که مثلا که تأثیرش واضح نیست یکی اینکه این زیر بنای حقیقت ورده باشه بله این مشخصه. این تأثیر و هر دو مدنش تثیر دارن هم این تصفیر ظاهری برد تصفیر داره و هم اون تصفیر واقعی بر تثیر داره که صاحبا اون تصفیر واقعی تأثیراتش ایشترکارو شاید در سیران وحثا را اشاره بود این راجع به این قسمت از برد. و اما اصلا خودی بحث چی هستی نفسه ایراندالای زیر بنا آیا نسبی بودن اجبار و ظهور یا مطلق بودن که من که مرستاق مصرم این درباره چیه چه هایی داره احتمال <تصفيق> داره که نظره کسایی که آهل به هم مجموعه حتی خیلی از شباله به بست هایی جدیده منتی کورمان که این معاملی میشه داره جا میشه بجا بشه میکنه، افتا از اون نکتهش یک یه یه نکاتی باشه که در بعضی از روایات ما آمده حالا این مناسب از بد نیسته یه در حده توضیح داده بشه چرا تحلیم بیشتر توضیح که تو ما آمده روحورا رو درد بکن هر سابقه که شما برمینه که از روایات معروفی که طیبان <coughs> بر در جسر و ردا فرمونه سرمی و شیعه اون نمی کرد و از هم یک سره نیست نظر الله این نظره با نون الله نظر الله و عبره این وقت نظره انتراه از توی دار که این پراه یعنی روشن بود نظر الله سرسر بود روشن بود مثل بینا باد آقا باد مثل دعا ماند نظر الله و ابرهن. همه مقالتی فضعا ثم بلگا کما سمعا سمع به خامل صرف الان مندهی به بفرید و رو به خامل صرف این طلاب رو در ایجا سویده ها, ها و تغییر میشه با تقریبا از که تواتر شد سونیان دارد و اصلیه که ما و و سهید به واقعه ندارم واقعه و همسنه جوابه نیست یکی از خطرت های رسول الله این جوابه کلمه کلم نشدند خب ایش این رو دیر همین بحث های به اصطاده ما همونوزی قرار داد همین بحث های زبورات دارد هر اون حضر مثلا روشن با ندارم ناسن ترز با آبا با کسی که یا کسی که صحبت من رو به شور آ سعی کنه کاملا اون رو درک کنه ثم بلغه ها کما سنه ها و همونطور که شنیده برای اگر نهاز بکنه خودش توش دخل و تصرف نکنه نگه مراد پیغمت پیغم این دوگه ما هم نه این کار نکنه همونطور که از من شنیده به این الفاظ اولا بفهمه خودش درده وقتی در اینجا خودش همون به اصطلاح مرتبه فقاهت و پرجوه از که مصابند اینا مرحله قارب بودن بین روایت و بین وعی رواشه شیئا و وعاشه شیئا یا فقاهت فقید بودن رو به اون زرافت ها و دقیقه ها و نوزنجی ها ها ها های خاص خودش میرود این رو فراحت به اصلاح معنا می کنه اصلاح و هر چطور سامنم می کنه که از همون سر اول اصلاح این مطلب کاملا جدا روی که بین راوی و بین غایی یا بین راوی و بین فقی هر رو بگذاره همین حدیث در وین حدیث با که شنیدیم من حتی برده اقومتی حتی برده حدیثم یعنی که توی دنیا با اختلافات مدنی که داره توی بعدی از محصولشی داره هشتران الله و قیامت ها آلمان خود همین حفظ شعه حدیث به درجه از تقاهه به در بیانند کردن کتاب از نام المحدث الفاصل تیشه سالی به اصطلاح اولین کتاب در نیاره حدیث در احدث علیه نمکزای راموانوزی علموحد به صور فاسد فاصل یعنی خب جدا بکنیم بین راوی و الوایی ببینیم راوی و الوایی پیران را هم نورا نایم و این شمیم و بکنه که کلام من رو بفهمه و وی بکنه و درس بکنه ها کنا سنه ها بعد همون که شنیده همینطور نعبه بکنه نحضه تصرف نکنه فرق بقام نده فقه الا منغوب از خهمه خیلی زرافت به یعنی ای آی که سو صحاب هستی ممکن است این حدیث من دویجو بفهمید بعد همون رو همون جور که هست نعبه نه اون جور که فهمیدی بعد برای یک کسی دیگری که نارو کردید ممکن است او چیز دیگری بسکت بسه سر رده ها مرسه ایلا من خواه از سخونه ممکن است او زرافت های دیگری پستیار اون نقاط دیگری دیگر دیگر. از دردی این ببینید رده ها مرسه ایلا از سر من نامن خواه از ای سخونه این کناکه از که این اجمال و یک عمر نسبیه ببین ممکن است شما از این حدیث پیغمبرد پنیشتا مطلب بفرمید مکن از همین حدیث یک لفر دیه فلسطن ده سال ببینم باز ده سه لفر سه بار تا بازدوشه پیس سال بفرمید مرغوم سلیم مرغوم سلیم مرغومی از مرغومی اصطادشون داده از اجاره به همه این است که ما که مثلا دیگری شد تو به آنینها بوده. صبح که مردم میگیدی در مثلا مکث نواز میکنند، یا نواز میکن. تو بدن میگردد. احاطه زنیم که برای مردم معنی میکردن خب برای ما تری جالب بود از شب که میام از این که علمی همون توی علمی یعنی و هم حدیث جور دیواد لجب لجنه علمی میگردد. یعنی معایب مکاتبی رو از حدیث درو ممکن است نداری شفای در نصبی بودن به این باشه. دقیق <تصفيق> کردیم چون از کنم این رو مردموسا توضیح کافی نبدادن پرشون حضر کردن از آنکه که اشمال و زهور نسبی نیست مطلق این عوض خود این مطلب رو چند بشه بفهمیم مراقب مراد از نسبی و مطلق چیه خب یه حدیث خوندیم حدیث سریعی هم هست فرام با ها منتقه من ها و همه که این معلاش این که ممکن از ممشن است ممشن است معامل متعدد و ضرورات متعدد برای یک کلام برای یک مقرد باشه برای شخص دیگر اونطور نباشه ولی تا وزیفه ما نیست که کلمات خیلن بر برهیمه و بزرگان و حتی اونجور که خود رو نه اون رو به این الفاظ نعبی بکنیم ممکن است طرف مقابل ذرافت ها و نصافت های دیگر. اصلا بزرگ بودن شخصیت انسان برمیه وانی اوقات کلام اینقدر زیباست این و اینقدر مکن و هر هرچی آدم بیشتر فکر میکنه بیشتر از توش معمی میاره. مرمون سیدرالی در دیل قیمت و کنز و برای مایوخ ازش هر انسان به اونی که مقدار طبانایی و کار را درست انجام دادن و صحیح انجام دادن و زیبا انجام دادن می‌خوام این کلام هر چه فکر معانی تمام میشه کلام جواب کلمه معانی ما و از روایتی که مادرزی بحث هم در بحث از این در های ما در بخش زبان شناسی بار معنا را خوندیم در بخش سابق و واژه‌ش تراوان بافت نظر از اسناد این مطلب در بخش‌های تعویلی ما آورده گویی آمده معانی بیان در اول آفیشه و آخر آفیشه و که بسید آراموزه مثل بوتون و هفتون و که بودن و, هفتون و هفتون هم بشه همونید و همین در توضیحه بود و اضافه بر او، حالا آیات بوتون روایات بوتون یک مشکلاتی داره که در بحث مشترک و در بحث مشترک مفصل و جمع تحضیح شدید روایات دیگه ای داریم که بحث اختصاصی به بوتون و قرآن اصلا هر کلامی همینطوره امام می فرمان امنا منقول و کلام ولنا منها منهو سبقون هفتاد معنامی توی برده ایسی شد امنا منقول و کلام ولنا منهو سبقون محرشا یا امنا کلمه مثلا معنای کلمه آیه شد خصوصی کلمه تحمل و معنی این آیه کلام این ها از سن سن کنیده ها سبیه نمشه هم از کمشون راه تیجاده یاده نمیده که یکی رسانه هستم اولین آیا ممکن از مراد این باشه یه مراد از نسبی بودن این باشه وقتی اینجا این وحث میاد که رابطه بینیم معانی این وحث میاد که آیا واقعا معنای نهبارد این است که کلام بدون مراد میشه و اصولا مرادی در منتر گرفته نیمیشه خب حتما شعر معروف اون شاعر دستانی اختر در ذهن شما شد بشتون که خواهی مماده این کلام در فعال و این نماجع و زسان فعال دلیگا زبان طریق است به اون مراد و این نماجع و زسان همه به نفره باید یک مرادی باشه آیا مراد از این که به اصطلاح ما ملتظر بشیم که کلاب دارای هفتاد ورش میشه و به هفتاد یا به هفتاد نقطه بشیم رو معنا کرد معناش این که این نصفی و معناش اینه این که اصولاً مرادی کش نباشه یا اگر باشه یک نور به اصطلاح روابط خاصی هست یعنی یک مراد واقعی هست هفت سازه هست هم یک رابطه با مراد واقعی دارن این باید تحلیل بشه، این نقطهش باید تام بچه میشونم در تحلیل کنیشون وقتی بودم تمام شد وقتی بودم تمام شد تمام شد سردا فقط این مقدار رو من توضیح برم انصاف قضیه در این مرحله اجماع و بیان مجموعه و یه ما سه مهور رو فراموش نکنیم یک محور محورات و عرفی که در این محور محورات و عرفی به هر یک بودن خیلی واضح تر و اون آبیان نامید دو محور مطالب فقی و قانونی که در اینها مثلا روایات فقی و قانونی ما که یا اخلاقی ما که در اینها وجود احتمالات دیگر بعید نیست اما شینگی نمیشه فراوان باشه به تبیات داره که برطوری از اون و بخش سوم بخش‌هایی که برمیگرده به اصطلاح به مثل فلسفی یا مباحثی مثل عرفانی یا مباحثی مثل آیات عقاید و احادیث راجی بر با اون چیزی که در بعد شهود این اون که بیشتر به اصطلاح لغز تحمل معانی و تعدد بیشتر این مرحله است یعنی اون قسمت‌هایی که خیلی به اطلاق بشه اون حالت زهوراتی به سامن نصف از دست میده در این این بیان احتمالاتو میشه بیشتر این, این سه مهوت اصولا در نظرتون باشه چون این در تأثیر به اجمال بیان و الله و محمده و